یک کچل ها شانده داستان زیبا به قلم حمید رضا خذایی ارائه شده از کانال هزار افسان مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده ماهبانو دروغ های شاخدار یکی بود یکی نبود خیر از خدا هیچ کس نبود. پادشاهی بود که از دروغای شاخدار خوشش می اومد و برای همین اعلام کرده بود اگه کسی بتونه تا دروغ بگه که کسی تا حالا نشیده باشه و کسی ندیده باشه دخترش رو به اون میده. خیلیا به هوای دختر پادشاه اومدن دروغ گفتن و سرشون رو از دست دادن. کنگره های قصر پر از سرهای بریده شده بود که دروغ گفته بودن و پادشاه قبلا دروغاشون شنیده بود تو همین شهر یه کچل خارکشی بود که از صبح تا شب تو بیابون خدا کار میکرد و خار میکند و اونها رو برای حمام شهر میبرد یه شب که از خارکنی و خارکشی به تنگ آمده بود به ننش گفت ننه مادرش گفت جان ننه کچل گفت فرد صبح برو و در خونه شاه رو جارو کن مادرش پرسید برای چی ننه؟ کچل گفت آخه میخوام برم و دروغ بگم مادرش گفت ای ننه جان میدونی چند تا سر از کنگره های قصر پادشاه آویزونه؟ کچل گفت آره میدونم مادرش گفت ننه جون، تو یاد نداری دروغ بگی هر چی بگی میگن راسته اون وقت سرتو می و میزنن به کنگری قصر کچل گفت تو به این کارا کاری نداشته باش مادرش گفت باش یک دل راضی به صد دل ناراضی بلند شد و رفت و در خونه شاه رو جارو کرد جارو کرد و جارو کرد تا به در اصلی قصر رسید نگهبان ازش پرسیدن آه چیه چه چی خبره پیر زن گفت، بله اینجوری ماجرا. اونها هم بهش گفتن، اشکالی نداره، بگو پسرت بیاد. آفتاب غروب کچل خارکش، موین نداشت که آبوشونه کنه. عطر و گلابی هم نداشت که به رختاش بزنه. پاشنهای گیوش رو ور کشید و رفت و به قصر شاه رسید و اجازه ورود خواست. بهش اجازه دادند و وارد قصر شد. پادشاه، وزیر، وکیل، کوچیک و بزرگ، همه با همه اومدن و دور تا دور نشستن. کچل گفت مال و تجاری بود که باید به قندهار هار می بردم. اون وقتا خر و اسب و شطوری نبود. خروصی داشتیم که 80 من زعفرون بارش می کردیم. خودم بین بارا می نشستم. دستمالی داشتم که اندازی ده من انگور می گرفت. جای شما خالی دستمان رو باز میکردم و همین جور انگور میخوردم. رفتم و رفتم تا رسیدم به قنده ها. بار رو که پایین گذاشتم پالون خروس رو برداشتم دیدم پشت خروس زخم شده. پرسیدم: برای زخم خروس چی خوبه؟ گفتن خاکستر گردو. ما هم یه گردو زیرش آتیش کردیم. سوخت و سوختش رو، مالید پشت زخم خروز. روز دیگه دیدم درخت گردویی از پشت خروز سبز شده. مواظب درخت بودم تا بزرگ بشه. درخت به قدری بزرگ بود و از بس گردو میکرد همه اهل ها رو گردو میداد. مردم از بس سنگ و چوب و کلوخ به درخت زده بودند. روی پشت خروز یک زمین باز شده بود. یه روز نجارای شهر رو خبر کردم، اومدن و یه نردبون درست کردن و گاف ها رو به پشت خروز بردم. زمین رو شخم زدم و هندونه کاشتم. بعد چند وقت زمین ای داد به چه بزرگی؟ کارد رو انداختم و هندونه رو قارچ کردم. میون هندونه دنیای ای بود. یه طرف بهار بود و یه طرف برف می بارید. یه طرف پاییز بود خلاصه یک کلام چهار فصل سال بین هندونه بود و تا حالا کسی همچین چیزی دیده همه گفتند نه پرسید کسی همچین چیزی شنیده همه گفتند نه گفت پس بنویسید این یک دروغ فرد و صبح کچل خارکش رفت به خارکنی و تا آفتاب غروب هی خارکند و هی فکر کرد آفتاب غروب اومد به مجلس پادشاه وزیر و وکیل کوچیک و بزرگ همه نشسته بودند کچل گفت دیشب ماده گاومون زایید و چهلتا گوساله داد گفتند یه گاو و چهلتا گوساله این گاو چجوری اون وقت به اینا شیر میده کچل گفت اولی رو به سینه مادرش انداختیم دومی رو هم به اولی خلاصه کلوم هر چهل تا گوساله شیر می و از گوساله آخر همچین شیر می اومد که یه آسیا رو می گردن. تا حالا همچین چیزی کسی شنیده همه گفتند نه. کچل گفت پس بنویسید این دو تا دروغ ها دید چیزی نمونده که کچل دخترش رو ببره به وزیر و وکیل و نوکر رو همه گفت این کچل فردا هر چی گفت بگید راسته. اونها هم گفتند چشم. فردا هنوز آفتاب غروب نکرده بود که دیدند کچل خارکش پیرن سیاه بسن کرده و با هر دو دستش تو سرش میزنه و میاد. ازش پرسیدند چیه چه چی خبر شده؟ کچل گفت آخ بابام آخ بابام و همچنون با دست تو سرش میزد. ازش پرسیدند چی شده؟ گفت بابام دیشب مرد همه گفتند خدا رحمتش کنه کچل گفت چی چی خدا رحمتش کنه پدرم گفته هفت برابر سنگ آسیا از پادشاه پول و جواهر طلب کردم گفتند بابای تو خارکم بوده مثل تو هموم رو شاخ میکرده پولش کجا بود که هفت برابر سنگ آسیا از شاه پول و جواهر طلب کنه کچل گفت یعنی دروغه همه به هم نگاه کردند مونده بودن چی جواب بدن اگه میگفتند راسته باید هفت برابر سنگ آسیا جواهر بهش میدادند و اگر می می‌گفتند دروغه باید دختر پادشاه رو بهش می‌دادند بالاخره چاره‌ای نداشتند که بگن دروغه در طویله اسپا رو باز کردن رو کچل خارکش رو در اونجا هجله بستن پادشاه کاردی به دخترش داد و گفت وقتی این کچل به هجله اومد بزن تو شکمشو و پاره کن کچل خارکش یه پوست تو سرش کشید و روش رو هم آرد مالی کرد اون وقت اومد پشت در هجله هی hey, کله می کشید دوباره قایم میشد. دختر گفت چرا همچین می کنی؟ گفت بابام وقتی به شکار می همچین کاری میکرد، هکله میکشید و پشت خم میکرد، دختر خندش گرفت، اینقدر خندید، اینقدر خندید که بیخال شد و کارت از دستش افتاد، خیز برداشت و کارت از دستش قاپید. خبر به پادشاه دادن که ای بابا کار از کار گذشت، وزیر و وکیل جمع شدن که قبل یه عالم دامادت رو به قصد بیار، خوبیت نداره در طویل زندگی کنه. پادشاه گفت اون و زنش لایق همون طویله هستند. این بود و این بود و این بود تا پادشاه مریض شد. پادشاه گفت رمال ها بیان و رمل بکشند. ببینن بعد از ما پادشاهی به کی میرسه؟ رمال ها اومدند و هرچی رمل کشیدند و استرلا بینداختند دیدن پادشاهی به همین کچل خارکش میرسه. گفتن قبل عالم بعد از شما پادشاهی به همین کل خارکش میرسه. پادشاه خندید و گفت چیزی رو که خدا بخواد همه دنیا هم که جمع بشن نمیتونن جلوش رو بگیرن.